وقتی که اینها حرکت کردند از مصر بیرون آمدن بنی اسرائیل و جناب موساین را آورد بعد از مدتی خوب لشکر فرعون از پشت رسید وقتی که اینا به حدی رسیدند این دو جمعیت که دیگه همدیگه رو از دور میدیدن یعنی اینا میدیدن که اونا درن میان اونام اینها رو میدیدن قال اصحاب موسا اینال مدرکون پدر اون در آمد از دست رفت قال کلا اینمعی ربی سیهدین با خدا باشید با خدا باشید با متعال مگر وا میگذاره بنده گروف با والله تخافا امی معکما اسمعو و عرا با خدا که باشید برای خدا که باش خدا متعال کمک میکنه از دشمنی اشرار بیمناک نشید دشمنی بالاخره وجود داره هیچ ملتی که صاحب حرفی باشد ایده باشد حرکتی بکنه از دشمنی دشمنان مسون نیست به نظر من اقبال ملت ایران این است که دشمن ملتی ایران و دشمنان ملت ایران جزو بدنام ترین ها در دنیا هستند شما ملاحظه کنید امروز دولت آمریکا در سطح بین المللی یک بازیگر خشن و آلوده به جنایت معرفی شده واقعیت قضیه همین خوب اینا دشمن ما. دشمن ما یک دولت آبرومند یک دولت حرف حسابدار نیست اینها از اینها نبایستی بیمی انسان به خودش راه بده و اتکاء به حمایت الهی امر بسیار مهم نیست وانکل <تصفيق>